سخنرانی دکتر محمد عصدی گرمارودی موضوع سخنرانی عبادت خالصانه و اثرات آن با توجه به فرموده حضرت زهرا سلام الله علیها نوار شماره چهار قالت فاطمه سلام الله علیها من اصعد الله خالص عبادته احبت الله علیه افضل مسلحته جمبندی بحث چند شب گذشته با توجه به این حدیث حضرت زهرا سلام الله علیها این شد که مقامات درجات مختلف معنوی رتبه ارزنده وجودی برای آثار گوناگون حیاتی به اقتضای نحوه عملی کرده ما در پیشگاه خدا که تحت یک عنوان عام عبادت خالص که شامل انایت خاص الهی شود در واقع میشه در این عنوان خلاصه کرد حالا این رو هنوزم کار داریم بحث میکنیم ولی دو سؤال یا دو نوشته به دستم رسید همین هفتش ده که خدمتتون اینجا بودم این سوال برای دوستان ما مطرح شده قرنهاست تو کتابها طرح کردند بحث کردند توضیح دادند و بسیاری از بزرگان در بحث بحث‌های تفسیری در آیات مربوطه یا کلامی یا برخی از روایاتی که مثل روایات تینت که شرح روایات تینت مخصوصاً در کافی مورد بحث اهل نظر قرار گرفته به این بحث پرداختن چون سآل شده من یه مجملی اجازه بدید مربوط به بحث ماست اشاره کنم ادامش رو مخصوصاً چند آیه و باز روایت در تعیید ارائزم که امشب بناس بحث کنیم به اندازه ای که فرصت اجازه بده پی بگیریم این است که مقامات انبیا و اولیا اگر اکتسابی باشد افاظه از طرف پروردگار نباشد اولا طبق یک نوشته اینکه که محسوم فرموده گل شیعان ما را از ما همون احادیث تینته که ما گل خاصی هستیم از اضافه گل ما شیعان ما رو ساختن پس اصلا ما یک موجودیت ای داریم اگه جداگانه ای داریم خب خدا از اول ما رو یه جور دیگه خلق کرده حالا که خدا یه جور دیگه ما رو آفریده پس از بقیه توقعی که نسبت به ما خدا داره نباد داشته باشه ما اصلا در یه درجه دیگه قرار داریم در این نوشته فرمودن این نفی حکمت و عدالت خدا را نمی کند به جایت که خدا سابق خیاره با بخواد به یکی بده به یکی نده و روایاتی داریم شاهد آوردن مثل روایت هیجده باب عقل و جهل کافی را که امام علیه السلام فرمودن امام رضا علیه السلام در محضر امام رضا سخن از عقل شد حضرت فرمود بله این یک انایت فروردگاره که خداوند به کسی داده و هیچ کس نمیتونه خودش برای خودش ایجاد عقل بکنه حتی در روایات دیگه در مکمل این روایت داریم کسی نمیتونه عقلش رو زیاد کنه. مهمتر از این. ولی بله اینو خدا داده. خب بزرگترین سرمایه هم که عقله پس خدا داده. خب خدا به یکی عقل بیشتر داده که عقل کمتر. پس با یه حرفایی من جور در میاد. عزیز من از زمین تا آسمان فرق میکنه. بله. این در تکوینه. من در اکتسابیات تشریعی دارم بحث میکنم. حالا توضیح میدم. ببینید آقا. دو تا بحث داریم. اینا دقیق فن بهش پرداختن، مخصوصا در بحث شرح احادیث تینت اگر مراجعه کنید به کتب مربوطه از اون میادین سر و صدا و پرگوغای شرح احادیثه که فن دست و پاها زدن اونجا بنده در همین میزان اطلاعات اندک و سن و تجربه کم خودم چند جای آیات و روایات بود که اساتید متعددی رو خدمتشون رسیدن و سر و صداها می کردیم تا مطلب رو بفهمیم اشکالها می کردیم دادها می زدیم. یکی بحث عالم ذره از حساس ترین بحث های قرآنیست بحث عالم ذر با, با کمال تعصف بسیاری از افراد برخورده بسیار قشری و سطحی نسبت به عالم زر دارن این نیست در المیزان مرحوم علامه تبا تبایی یک دینشناس قوی عالمی که پنج بار بهارو رو دوره کرده تو بحث روایت تو بحث تعقل و تفکر در اون اوج تو بحث قرآن المیزان می‌نویسه شنزده نظر رو راجع عالم زر تو المیزان نقل میکنه پونزه تاشو رد میکنه یکیشو میپذیره با استدلاله ها نه اینکه واقعا مرد میخواد بیتاروف که بیاد بحث عالم ذره علمیزان رو مطرح کنه یعنی چی یکی از اون بحث های جانانه بحث تینده در خود قرآنم مثلا فرض بفرمایی در این آیه شریفه ای که من سه سال قبل تو ماه رمزون شش جلسه راجع این آیه تو همین مکان بحث کردم نواراش هم اینجا هست انما يريد الله ليذح با عنكم انكم رجسا اهل البيت و يطهركم تطهيرا خدا اراده کرده که شما اهل بیت متحر با شش جلسه به اندازه‌ی وقت وگر نه بیشتر وقت میخواد. ما بحث کردیم این اراده تکوینیه این اراده است. یه چیزی خارج از تکوین و تشریع جبریه یعنی ائمه بل اجبار پاکن پس امتیازی نیست اگر اینا مفصل بحث شده حالا من با اون جزئیات بخوام وارد بشم دو تا مشکل داریم یکی وقت نیست اگر سیچل جلسه جلسه حوصلهشو دارید وقتشو دارید منم وقتشو پیدا کنم یک دوم حوصله این بحث باشه بعد نیست ولی مال جلسات درسی خصوصی که مقصود وارد بشی به اندازه ای که در جلسه عمومی بی جواب نمونه اشاره کردم حالا ارزم کنم امیر المؤمنین علیه السلام در نهض البلاغه به نظر بنده در یک عبارتی جواب همه عرفا رو داده جواب خود از امیر حضرت فرمودن حرف همه جا طرفی نیست الا در یک جا همه جا طرف اینیه. فقط در خلقت یک طرف است یعنی چی؟ در آفرینش آقا من و شما چه حقی داشتیم که خدا ما رو انسان آفرید هیچ من و شما چه حقی داشتیم که خدا ما رو مرد یا زن بیافرینه هیچ این تریبون چه حقی داشت که خدا در عالم نباتی به صورت یک گیاه و درخت آفرید بعدم چوب اینجوری در اومد هیچی در اینجاست که حسن و به اختزای تفاوت موجودیت مطرح نیست اون حق مطرح نیست هر درجه از موجودیت که داده است میشه چی؟ لطف میشه انایت مثال بزنم به قدر اینا رو بحث کردن اهل فن در جای خودش میفرمایند مثلا شما یه وقت دو نفر را آوردید یک کاری رو دادید. گفتید این کارو رو برای من بکن هر دو یکسان کار کردن حقوق بهشون صد تومانه اوم صد تومانه. شما به یکی دادید صد تومان به یکی ن تومان زمهقببیه و حق ازه صد تومان کار کرده. اما شما یه پولی تو جیبتون گذشتید تو خیابون دلتون میخواد خیر کنید به یکی پنجاه تومان خیر میکنید به یکی صد تومان به یکی دویچ اینجا ظلم مرتکب شدید که تفاوت گذشتید قبیهه یا لطفتون را متفاوت انجام دادید. لطف متفاوته میشه سوال کرد چرا لطف متفاوت هست راز داره یا بی رازه اگر طرف حکیم باشه همین لطف متفاوت هم راز داره چون حکیمه رو حکمتی مثلا خود خداوند در قرآن راجع به اصل خلقت که متفاوت آفریده میگه لازمه نظام احسن اینه احسا داره آلا مثلا پرس کنید خدا همه رو مرد می آفرینید. این زن... موجود کامل نبود همه رو زن نیافرید کامل نبود اگر در این عالم انسان آفریده گیاه و حیوان و مثلا آب و جماد نیافرینه موجودیت ناقص بود حکمت رو ایجاب میکنه لطف متفاوت در عالم داشته باشه در اون که میفرماید عقل عقل مخلوقه به عنوان یک موجودی که خدا به ما انسانها داده بله در انجام در اینکه درجات متفاوت داده بحثی نیست به اقتضای شرایط مختلفی که از نظر زندگی باید باشه و تاییدش هم حضرت برمودم کلم الناس علا قدر عقولهم پس عقول در دریافت مصالح مختلف به اقتضای عقلم حسنات الابرار سیئات المقربین مطرح میشه و هکذا و ها کذا این یک داشته باشین اما یه بحث امیرالمؤمنین فرمودند فرمودن در خلقت حق یک طرف است فقط خداست کسی حق نداره خدا انایات کرده برای این مراحل موجودات به صورت مختلف موجودات مختلف آفریده اما در غیر از خلقت همه جا حق طرفی نیست اگر خدا حق دارد بگردن من که من باید عبادت کنم خود امیر میگه منم حق دارم که در نتیجه این عبادتم خداوند به من انایت بکنه اینو داره بیان میکنه لذا اگر مثلا شما اومدید در اون موجودیت اولیه آقا خدا اولا حالا معصومین انبیا اولیا رو جدا کنیم بیان سراغ همین های عادی خدا دو تا انسان آفریده یکی تیزهوش یکی هوشش معمولیه نمیگم دیوونه است عقب افتاده است نه هوشش معمولیه این تفاوت داره بله حالا که تفاوت داره در همین تیزهوشی و, و در این هوش معمولی هر دو میتونن عابد بشن هر دو میتونن بنده فاسق بشن چون تیزهوش بخواد فاسق بشه میتونه چه این هوش معمولی داره بخواد فاسق بشه میتونه به عکس چه این کسی که تیزهوشه بخواد عبد خدا بشه میتونه چون یکی که هوش معمولی داره حالا اینها منتها درجه وظیفه‌شون فرق داره بله به جهت اینکه به اقتضای لا یکلف الله نفسا الا وسع وسشون مختلفه کما اینکه اگه دو نفر هوششون یکسان باشه یکسان یکسان یکی در محیطی است تمام شرائط هدایت براش فراهم بوده در اختیارش بوده یکی در محیطی است که امکانات هدایت براش نبوده وزیفشون در پیشگاه خدا یکسانه بازم نه هوششون که یکسان بود ولی امکانات هدایتیشون یکسان نبود خدا عادله لذا در اون قسمتی که خدا داده است به عنوان وجود همه موجودات درجات مختلف دارن از جماد بیاید تا نبات و انسان در خود انسان هم درجات مختلف و عقلی اما هر انسانی سالل نه دیوانه که تکلیف نداره هر انسانی که مکلف است لازمه مکلف بودنش چیه عاقل و بالغ باشه حالا اگر انسانی عاقل است و بالغ سطح تکلیفش به اختضای سطح اقلش و امکاناتشه اگه به اقتضای سطح اقلش و امکاناتش استفاده کرد خدا اضافه بش میده. این میشه افاظه افاظه خدا بر مبنای استفاده فرد از حد داده های اتفاقا جز آیاتی که امشب مخواستم بحث کنم همینجا مناسبه اشاره کنم سوره مریم آیه 76 خداوند هدایت را برای بندگان قرار داده بله اما میگه برای بعضی ها هدایت رو بیشتر میدم چرا و یزید الله الذین احتدو خودن ببینید آیه اگر این روایت رو که در بحث تکوین است راه میفرمایید اون همه روایت که من بعضیاشو خوندم که من جمله دیشب خوندم که پیغمبر که ابراهیم گفت من علی رو امتحان کردم این صلاحیت رو داره بش دادم این زیارت وارد از معصوم راجب حضرت زهرا امتحان کردیم و وجده که لم تهنکه صابره و, و اینا رو اگر بخوید شما مثلا تو صد ده جلد بهار بگردید روایات در این زمینه بی‌تأриф اندازه چهار جلد شد در لابلای بحثایی که پراکنده است روایت کی هر پا رو میزنه حالا اینو حبسله میخواد بگرده پیدا کنه بحث کنه من خیلی پیدا کردم شاید بیش از بگم هزار روایت در این زمینه تو یاد دارم که در این زمینه حالا و یزید الله الذین احتدو خودم و یزیدو زیاد میکنه کی الله خدا کیو زیاد میکنه خودم هدایت رو برای کی؟ الذینه اهتدوا برای اون کسانی که هدایتو قبول میکنن یعنی چی یعنی خدا هدایت میفرسه شما قبول میکنی میگه خودش خواب این جزاش اینه پاداشش حق پیدا کرد اضافه بشه بده و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبُلنا از امام رضا علیه السلام پرسیدن شما این مقامات رو این عین روایت امام علیه السلامه تو کافیه ما فرمود ما نلا به شیء الا عمل ما یه نافیه به این صورت ما به هیچ چیزی نائل نشدیم مگر اینکه عامل بودیم عمل کردیم خیلا بحث داره نه این که فرض بفرمایید ببینید نه اینکه که مثلا اگر شما الان یه تیزهوش دارید در اصل موجودیتش نسبت به آدمی که هوش معمولی داره آیا در اصل خلقت خدا اختلاف گذاشته بله یه چیزای مختلفی در اصل حبه خلقتی دخالت کرده اون بحث دیگریه اما همین انسان تیزهوش چقدر تیزهوش داریم از نظر عبودیت از نظر بندگی و ترقی در نردبان قرب الهی از افراد هوش معمولی عقبترم داریم یا نداریم چقدر داریم تو حالا و چقدر آدم تیزهوش داریم در مقام قرب به درجات بالام این درسته استفاده از این امکانات در اختیار ماست که مستحق انایت پروردگار بشه اینی که ازت زهرا سلام الله ها دارن به ما یاد میدن میگن بیاید شما اونی که وظیفه دارید بفرستید بالا اونو کوتاهی نکنید اون چیه؟ عبادت خالص ولی شما عبادت خالص داشتید او حبوت افضل مسلحت داره پس حبود افضل مسلحت در اثر خلوص عبادت شماست این آیا شامل حال خودشون هم هست؟ بله لذا هی بر درجاتشون افزوده میشه سوره محمد صلی الله علیه و علیه وسلم و زادهم هم خودن همون مضمون با یه عبارت دیگر و لذین احتدو اون کسانی که هدایت را قبول میکنن میپذیرن من بارهایی مثال رو زدم که شما توی کلاس میرید معلم داره درس میگه یه شاگرد خوب گوش میده یه شاگرد پیگیری میکنه یه شاگرد سوال میکنه یه شاگرد حتی معلم از کلاس اومد بیرون دنبالشم را میافته یه شاگرد تو کلاس هم هی میزنه سرشون میدازه پایین هی هم ساعت چه نگاه میکنه که زنگ میخورد کلاس بریم بیرون آیا این معلم در افاظه نسبت به این دو, شا... دو طبیعی است که تفاوت افاظه داشته باشه یا نه؟ تو میخواد؟ آیا خداعیمه که مظهر صفات خدایم با اصحابشون این تفاوت انایت رو داشتن یا نه؟ اصحاب سر یه چیزایی میگفتن که به دیگران نه اینکه نعوذ بالله تبع یزغال میشن میخواستند به اقتضای اون خواست دادن میاد اصلا خدام این کارو میکنه با بندگان حتی با پیغمبر الان براتون میخونم از قران سری اتفاقا یه دو آیه است انقدر در این زمین قوغاس قوغاس خدا میدونه اولین باری که من توجه به این آیه شریفه پیدا کردم به قدری فکر منو مشغول کرد و مکس کردم روی این آیه که خدایا چگونه داری در قرآنت راه تعالی رو به ما میفهمونی و با کمال تأسف گاهی یک بحثهای شاید دشمنان دانا که اونا زیرکانه وارد میشن و گاهی دوستان هم خیلی شاید تعمق لازم رو نکردن دامن زدن به اون چه که دشمنان خواستن این جدیت در مسیر حق برای گرفتن درجات عالی سیر الالله رو کاستن با یه وعده های صدهی قشری آقا بنده خودم برخورد کردم چون این حساب متره تو جامعه سه سال قبل بود چهار سال قبل بود شب قدر بنده اینجا یه بحث نسبتا مبسوطی رو متره کردم شب قدر، شب نالت شب عنابت، شب درگاه خدا رفتن، از خدا خواستن، تمایل تو برای گرفتن بیشتره به خدا نشون بده، خدا بد بده. چند روز بعد توی خیابون منتظر تاکسی بودم یه آقای منو سوار کرد. گفت آقا من شب قدر اونجا بودم، شما این حرف رو که زدی اون شب من اعتراض دارم. گفتم بفرمایید اعتراض گفت خدا هر کی رو بخواد به اون درجی بالا برسونه میرسونه، هر کی نخواد برسونه نمیرسونه. ما چه کار گفتم این حرف دو پهلو داره. یه پهلوی ظاهری عوام فریبانه داره که خیلی قشنگه. اما چه کاریم؟ همه کار خداست. بله، همه کار خداست. لعنت بر کسی که بگه همه کار خدا نیست. اما خود خدا گفته است تو حرکت از من برکت. این وجهه دومش مردم از فعالیت بازداشتن، مردم از عبادت کردن بازداشتن، وعده غلط به مردم دادنه آقا خدا خواست بعضی‌ها رو اونجا رسون دیگه. ما پس این همه انابه خود ائمه چیه؟ در درگاه الهی برای قرب بیشتر اینا رو روش کار کنیم بذاریم روحیه در درگاه خدا رفتن عبودیت قوی تر داشتن حساسیت بیشتر نشون دادن ناله زدن البته قید می شرکم نشه یعنی چی؟ یعنی به اعمالمون ننازیم بگیم من که اینقدر گریه کردم گویا بنده خدای مشهد مشرف بود باید یاروش حساب میکردن یه آدم آبد مثلا اهل است آقا یکی از این زیارت این سفر تو به ما بده خودش نحقی کرده بود که من زیارت های متعددی در این هفشت عروضهی ای که مشهد مشرف بودم داشتم یک زیارت با زیارت با روزه زیارت با چی با چی یه روزم نه وضو داشتم نه گسل زیارت کردم خستم بودم اومدم از دور فلکه حرم مامرزه علیه السلام رد بشم گفتم یه سلامی بدم بگذارم حال تو هرم رفتن نداشتم هیچ فدام یه سلامی دادم ارذلیکی کردم. این آقا اصرار کرد گفتم اون یه دونه زیارت مال تو. بعد تو عالم خواب فهموندن تنها زیارت عالی تو این مسیرم یه دونه بود. گاهی هم یعنی آدم دور بر نداره. اون زیارتی که نه از ما نشون دادن عبودیت و بندگیش رفتن به در خانه خدا لذت داره به ما یاد میده حضرت زهرا توجه داشته باشه به خلوص در عبادته خدا هم از اون بر انایت حالا این آیه رو دقت کنید چقدر عجیبه سوره مریم آیه 64 و 65 خواستید بعد به تفاصیل حتما مراجعه کنید تو شرحش بحث ها شده در کتب تفسیری و ما نتنظلو الا بعمر ربک ما بین ایدی نا و ما خلفنا و ما بین ذالک و ما کان ربک نسییا نمیدونم تو جمع ما از دوستان کسی حضور ذهن داره این آیه راجع به چیه حالا دقت کنید و ما نتنزل ما نازل نمیشیم ما پایین نمیایم الا به امر ربک مگه به امر رب شما این ما کیه و این شما چیه قران دیگه باید فهمیم ما نازل نمیشیم فرود نمیاییم مگر به امر ربت رب شما این ما چیه این شما کیه گفتگو بین که بین جبرایل و پیغمبر همه نوشتن همه گفتگو چیه یک چند روزی جبرایل و پیغمبر نازل نشد یعنی از عالم بالا اون ارتباط و اون از نظر ظواهر امر برقرار نشد بعد از چند روزی جبرایل اومد پیغمبر پرسید خبری نبود این چند روز نیومدی جبرائیل داره جواب میده و ما نتنزل و املا به امر رب ما که جز به امر پروردگار تو حق نداریم بیایم پایین جبرائیل کنایه از چیه عنایت پروردگار به پیغمبر اسلام نزول اون امور خاص عالم وی از طریق خو... جبرائیل ابزار و شاگرد مکتب پیغمبره نه یعنی خود جبرائیل اون پیام و معموریتی که جبرائیل از عالم بالا برای پیغمبر داره و ما تنزل و الا امر و ربك ما تا خدا اجازه نده که چیزی نمیاریم برات و خدا بگه لهو ما بین ایدی نا و ما خلفنا و ما بین ظاله همه چی مال اوه. اونی که پیش و روئه اونی که پشت اونی که بینه یعنی هرچی هرچی هست همه مال اوه. و ما کان ربك لنخي یا خدا که فراموش نمیکنه ای یادش رفتا یه پیغمبرم این گوشه داشتیم بنا بود یه چیزی بهش بدیم آجرایل یادمون رفته برو یه چیزی براش ببر اونجا بی... نعوذ بالله پس چی هی... نه... شد پس چرا خدایی که فراموش نمیکنه؟ این آیاتو دقت بفرمایید به خدا قرآنم غریبه همون جوری که امیرالمومنین غریبه همون جوری که حضرت زهرا غریبه همونجوری که روایات مکتب ائمه غریبه من یه بچه شیعه خدا میدونه دارم عقیدم مو میگمه فکر نکنید دارم شکست نفسی میکنم نه مکتب شیعه اونقدر عظیمه که شیخ مفید باید روایات و شهر بنویسه مکتب شیعه اونقدر قویه که علامه یه باید خاجه نسیر ها باید بنویسن ما انگوش کچکه اینام حساب نمیشیم ولی من بچه ای که چار تا استاد دیدم یه دهتا تا کتاب در این زمینه به ما درس گفتن، این چه دریایی است آیات و روایات؟ به خدا قسم صادقانه به عنوان وظیفه میگم، بعضی وقتا من میشینم تو کتابخونه مثلا راجبی یه آیه، 50 تا 60 تا کتاب مربوطه رو میارم اون آیه کتابی میگه، این کتاب بعد گیج میشم، متحیر میشم، پا میشم یه کمی راه میرم، من تو این دریا غرق دارم میشم، چه کار کنم؟ چجوری اینا رو جمع کنم؟ یه مقداری آرامش فیدا کنم تا بعد بیام یه واقعی توی قوغاییست کتاب خدا قوغاییست روایات معصومین اینا رو دور موندیم چه بکنم حتی به مثل من بچه میان میگم اینقدر لازم نیست تو عمق آیات روایات برید. یه چارت موعزه بکنیم یه رو با صدا قشنگ فقط روزه بخونیم آقا من که متهمم به زیاد روزه خوندن رو گریه کرده متهمم که چنینقدر مردم میگریونی منی که متهم به این مقدار گریه هم دارم میگم شما رو به خدا فقط گریه نیست اون جای خودش تعمق میخواد تفکر میخواد اگه با اون تعمق وارد گریه شدیم اون گریه اون وقت یه گریه دیگریه اگه با اون تعمق مسرور شدیم اون سرور یک سرور دیگریه شما تو این آیه دقت کنیم؟ خیلی جای فکر داری این آیه و ما نتنزل الا بأمر با ربك خب حالا خدا چرا امر کرد برو چرا امر کرد نرو آیه بعد جواب بیدار خودش میگه من چرا بگم جادار این سوالو بکنیم به عنوان تعمق در قرآن تدبر در قرآن افلا یتدبرون القرآن تدبر در قرآن نمیکنید خب حالا تدبر کنیم در این قرآن هر کدوم از ماها دیگه لااقل سالیجه بار که یه ختم قرآن دارید لا اقل سال یه بار دیگه ولی نه خیلی آمیدونم سالی دوازده ختم مم دارن خوش آب حالشون حالا اگه خالی یه بارم ختم کرده باشیم در عمر سی ساله چهل ساله پنجاه ساله چهل پنجا بار 20 بار قرآن دوره کردیم این آیه رو لاعقل چهل پنجا بار که خوندیم چی میخواد بگه و ما نه نذل و به امر رب ما کن آذل نمیشیم مگر به امر رب ما بین ایدی و ما خلفنا و ما بین زالک و ما کان رب کن یا پشت سر، جلو، بینش همه همه برای اوس او که فراموش نمیکنه پس چرا؟ پس چی شده؟ پا چرا نیومده؟ امدی بوده، نیاز نبوده یا آیه بعد جواب میده آیه 65. رب السماوات و الارض و ما بینهما. او رب آسمان و زمین و اونی که بینشه. یعنی چی؟ یعنی رب چی؟ حمر داره تربیت میکنه حمر داره سیر کمالیشونو بهش میبخشه حمر داره در مسیر حرکتیش و حرکت در میاره عبده خص تبر لعادته هل تعلموا له سمی يا عبده تو عبادت تو بکن تو بندگی تو داشته باش و تبر لعادته و تبر اینجا یعنی چی سبر را به پذیر باب افتعال برای متابعه و پذیرش و تحمل و گرفت اول میگه فعبد تو عبودیت تو بکن تو بندگی تو داشته باش او که فراموش نکرده تبر لعبادتی نسبت به این عبودیت برای او هم پذیرا باش و هل تعلم و لحو یا آیا برای او همنام، هم ردیف، هم رتبه شریف و مثل میشناسی؟ میدونی؟ یعنی اگه بنات از عالم بالا چیزی بیاد این فقط مربوطه به او که میخواد چیزی بده و اونی که باعث میشه از اون بالا به تو انایت کنه میزان صبر تو در عبودیت اینن حدیث اینو معنی کرده حالا رسیدم حدیث رو میخونم براتون اینن حدیث هم اینو معنی کرده چقدر صبر در عبودیت داری به اندازه صبر در عبودیت هد انایت شامل حالت میشه که در ایام دهه آشورا این بحث تقریبا بحث کردم اینجا به پیغمبر اسلامه که این دعای خیلی بحث داره که خواستی دقیق روش بیشتر بفرمایید من نمونه هایی رو از سوره صافات راجع به انبیا کنم چند تا از پیغمبران رو که در این رابطه خدا چی میگه سوره صافات آیه 75 تا 81 اگه بخوام یکی یکی آیات رو بخونم و معنی کنم اینا که دیگه چون چندین آیه پشت سر هم باید بگم سری میگم شما در تفاسیرش و بحثش مراجعه بفرمایید از سوره افتاد و پنج سوره سافتاد و لقد نادانا نوحن وقتی که نوح ما رو ندا در داد ما رو خواست فل نعمل مجیبون چقدر خدا خوب جواب میده و اجابت میکنه و نجیناهو و اهله من الكرب العظیم ما او و اهلش رو از این دشواری بزرگ نجات دادیم و جعلنا زریته هم الباغین و ترکنا علیه فی الاخرین از زریه او ما باغی گذشتیم و در برای بعدی ها از اونها افرادی رو قرار دادیم سلامون علا نوح فی الالمین درود بر این نوحباد انا کذالکه نجز المحسنین انا هون من عبادن المؤمنین از این روشن نو ناله زد نو صبر کرد نو استقامت کرد نو انابه کرد ما اجابت کردیم از او باقی گذاشتیم کسانی که این لیاقت وراثت مسیر الهی رو پیدا کنند. و وارث رسالت نو در نسلش از ما باشن انا کذالک نجز محسنین ما به نیکوکارا اینجوری جزا میدیم چرا انه نه یعنی چی یعنی به دلیل اینکه من عباد از عبادی بودن که مؤمن بودن عباد و مؤمن آیا ایمان جبری است خب پس آقا یه اده بالاجبار مؤمن شدن خدام اینو بهشون داد خودش داره توضیح میده در این آیه آیات 108 تا 111 همین شروعی ساخوات اینو راجع چند تا پیغمبر تکرار میکنه چند تا آیات 108 و ترکنا علیه فلآخرین سلامون علا ابراهیم کذالکن اجزل محسنین این نعومن عبادن المؤمنین البته قبلش تا اینجا رجبه سرگذاشت ابراهیمه صبر کرد تو آتش رفت تحمل کرد خفتیم پسرت کن قبول کرد چه کرد چه همین اعماله میگه که در اون جام بیان میکنه و طلا ابراهیمه ربهو به کلماتن فعتم مهم اینا همه رو بیان میکنه میگه و سلامون علا ابراهیم حالا باید گفت درود بر تو آفرین ابراهیم. کذالک نجد محسنین ما اینجوری به محسنین جزا میدیم ان هما من عباد المؤمنین وازم همینا چون از عباد مؤمن ما بود همین سوره صافات. از 120 تا 121 سلامٌ علی موسی و هارون انا كذلك نجدل محسنین انهما من عباد المؤمنین چون قبلشون چند آیه راجب موسی و هارون بحث میکنه اینا چیکار کردند، تحمل کردن ایستادن از میدون به در نرفتن ما حالا که به اینجا رسیدن اینام خودشون رو نشون دادن گفتیم سلامون علی موسی و هارون موسی و هارون چون با هم دیگه رو اعمال میکردن درود بر شما دو باد انا کذالک نجزل المحسنی ما اینجوری به نیکو کارا جزا میدیم انهما من عبادنا المؤمنین یک راجب الیاس پیغمبر بعد یه مطلبی هم داره که توجه بیشتری واسه بفرمایید سلامون علی الیاسین این آل نیست نیستا الیاسین انا نجزل من عبادنا المؤمنین اینجا داستان حضرت الیاس و پیغمبران این اینجنالی رو میگه چیکار کردن چه مشکلاتی رو اینا تحمل کردند وظیفه شما انجام دادن وقتی انجام دادم سلامون علی الیاسین اینجا یا باید بکنیم سلامون علا آل یاسین که داریم در جای دیگه که فقط تو پرانتز بگم حالا بحث نیست راجع به هیچ پیغمبری در قرآن برای آلش سلام نیومده برای خودش اومده برای نوح اومده برای ابراهیم اومده برای موسی اومده برای هارون اومده برای الیاس اومده برای انبیا دیگه زیاد داریم فقط برای پیغمبر اومده سلامون علا آل یاسین چون یاسین در قرآن پیغمبر اسلامه آل یاسین داریم که این از اون جاهاییست که بسیاری از مفسران بزرگ اهل سنت مثل گرتوی مثل این صاحب المنار رشید رضا از این حتی مپسرین جدیدشون که خیلی مثل سید قوت دیگران سخت اینجا موندن که چی بگن؟ فقط آل پیغمبری که قرآن میگه درود برو آل پیغمبر اسلامه، بقیه آل نداره اینجا اگه آل یاسین بخونیم راجبه همون آیه پیغمبر میشه ولی راجبه الیاس آخه قبلش لذا همه قرآنها در هر جا چاپ شده الیاسین داره الیاسین میگن جمع الیاسه یعنی مثل الیاس پیغمبر اینجوری چون یه اده از اینها رو میگن الیاس خودش کنایه از یک اسم استعاری برای یه عده از انبیای این بین بوده حالا این کاری ندارم سلامون علا الیاسین سلام برای این دسته از الیاس ها که اینجوری استادگی کردن انا کذالک نجزل محسنین ما اینجوری به نیکوکارا جزاشون رو میدیم برای اینکه اینها از عباد مؤمنین ما بودن حالا بازم اگه بخوام بخونم تو سوره انبیا در این زمین قوات اونم براید ببینید فقط از سوره کهف اشتباه نکنم آیه 19 باشه حالا دقیقا یادم نیست ببینید 25 آیه 25 یادم اومد سوره کهف آیه 25 بحثش رو قبلا مفصل داشتیم جناب خزر و موسا و وجدا ابدم من عبادنا آثينا من ملتنا رحمه آیه که دیشب خوندم ربنا لا لاتوز قلوبنا بعد إذ و وحبلنا من لدن که رحمه بعد هديتنا حبلنا من لدن که رحمه و وجدا عبدا من عبادنا یک عبدي پیدا کردن از عباد من عبد بود آتینا و من لدنا علمن و رحمه از نائیه ما به او علم و رحمت داده شد یعنی کسی که موسی باید بره پیش شاگردی بکنه چرا؟ چون عبد بود و خدا به خاطر عبودیتشم بهش داده حضرت زهرا سلام علیه ها در اینه به ما یاد میده سریع میگه من اصعده الله خالص عبادته عبادت خالصانه تو بده بالا تو اومدی تو این عالم از صبح شب شکر میکنی آقا و من دارم پول در میارم میشه همین پول در آوردن عبادت خالص بشه؟ بله و میشه نماز خوندن عبادت خالص نشه؟ بله این مهمه دقت بفرمایید عبادت خالص البته خیلی هم اینجا روشن رو فکر ما آب نشیم خب پس میشه عبادت بجز خدمت خلق نیست پس نماز نمیخواد؟ بنده صبح به که درکت نماز بخونم میرم به یه مستمندی کمک میکنم نه آقا اولا این شعر سعدی که آی قرآن نیست. ولی خود سعدی هم بدبخ منظورش این نبوده. فردای قیامت بیاد یقه ما رو بگیره بگه که این مثل این قضیه که من روایت رو قبلا خوندم. امام مجتبا علیه السلام تو مسجد الحرام معتکف بودن. اعتکاف که میدونید چقدر عبادت مهم نید. در حال تواف بودن تو اعتکاف یه بنده خدایی دوان دوان وارد مسجد الحرام شد. اومد خدمت امام مجتبا. یبن رسول الله به فریادم برسید. حضرت چی؟ حالا سلام تواصل میکنم شما من یه ذره کن نخورا بعضی مقدس ماویایی که نه افراد نه تفریق اشتباه نشه حضرت با کمال گشاده رویی چی خودش شده بده کارم طلبکار منو تعقیب کرده من پناهنده شدم به مسئله حرام نیومت تو و اومدم پیش شما حضرت فرمود من الان امکانات مالی ندارم که بیام بدم به طلبکار بگم که فعلا شما رو کنه آقا اگه شما وساطت کنی وقت میده گفت باشه تواف و شکستن نگاه کنید کتب روایی ما رو یه سند دو سند میشه من فقها روی این روایات یک شرایط خاصی که میشه شک... تواف شکست فتوا دادن روی این روایات یعنی اینا ها مطره روایاتی که مصدر از نظر سند امام تواف شکستن تو اعتکاف از مسجد خارج شدن بعضی از این خوشک مقدس ها که خیال میکنن عبادت فقط اونه که من حالا دیگه چیزی نگم اومد جلو امام مجتبی علیه السلام آقا معتکفید توافه حضرت فرمود میدونم اینم عبادت که دارم انجام میدم در اعتقاف معتکفیم که غیر عبادت این عبادت هی. حضرت از مخشب خارج شدن اومدن وساطت کردن این بنده خدا را آزاد کردن برگشتن اومدن ادامه داده. این روایت داره. این یعنی حالا ما مجتبی نماز واجبشونو نمیخونن؟ نعوذ بله داره یعنی آقا شما یک وظایف واجب دارید امرو این روایت یادداشت کردم برای شما بخونم ولی امشب نمیرسم میذارم فردا شب که این دو سه شب اشاره کردم اصل روایتو فردا شب بخونم من چند بار این کلمه رو به کار بردم قربه فرائض قربه نوافل چند بار گفتم روایتش کافی فردا شب براتون میخونم این روایتو بیارید طرح نذارید خاک بخوره. ببینید چی میگه امام علیه السلام فرائز یعنی واجبات دو رکت نماز صبح میخونم قربتن الله این نماز باعث قربه هست یا نه میشه قرب فریزه یعنی قرب واجب چه رکت نماز ظهر میخونم قربتن الالله میشه قرب فرائز امام علیه السلام در این حدیث سریع میفرماید فرائز با همه اهمیتی که دارد به اندازه نوافل ایجاد قرب نمی کند. البته توجه داشته باشید تا کسی فریزش رو انجام نده نافلش یعنی مستحبش پذیرفته نیست حالا چرا نافل قرب بیشتر ایجاد میکنه؟ به جهت اینکه شما در مقام عبودیت در واجب اینجوریه که چه کنیم دیگه حالا اگه نخونم بیچارم میکنه. نشون نمیده صد در صد واقعا آبدانه دارید انجام میدید یا از ترس جهنمه که فعلا اما وقتی شما واجبتون انجام دادید اضافه بر واجب مشغول مستعبات شدید یعنی میخواد بگید خدایا چش بندگی خواستی؟ بندگی میکنم به مستعباتم لذا امام علیه السلام فرمود روایت که فردشت میخونم که چی میگه قرب نوافل بزرگی خدمتش رسیدم اب ندار اینو بگم گفتم درس رو من بده چیزی یادم بده. نیم ساعتم بیشتر در عمرم توفیق دیدن این بزرگه در عمرم نداشتم خیلی هم میکنم باز ببینم نشده هنوز گفتم یه حالا فرصتی پیش اومده ما خدمتون رسیدیم یه چیزی به ما یاد بده گفت هریکی به هرچی رسید از ناله نصف شب بود بعد دخص مفصلی در این نیم ساعت برای ما مطرح کرد حالشو داری از خوابت بزنی شد داری برنامه تو تنظیم کنی یه یه ساعت دو ساعت نصف شب به درگاه خدا اناوه کنی منی که این مقدار حاضر نیستم واسم خوب خیلی بردن چرا بردن آقا نظام الهیش در این عالم تو عالم علم خوب درس خوند خوب عالم شد خوب درس نخوند عالم نشد خوب عبادت کرد همه اینا برمیگرده به فرمایش حضرت الله سلاماللیها عبادت خالصانه عبادت خالصانه‌ام خلاصش چی حالا فرصت نیست من روایاتی هم نوشته بودم که امشب مطرح کنم دیگه این میمونه برای فردا وقت داره میگذره من میترسم که مش... مشکل بشه فقط یه روایتشو میخونم بره بره. به خدا آدم من گيرم گاهی این کلمه بیام بگم میترسم این کلمات بیچاره یه مشکلاتی بکنه میخورم غورت میدم ولی خودتون ببینید من چی بگم این روایتو امام صادق السلام کتاب اصول کافی جلد دوم بابل عبادت تو باب عبادت این حدیث رو امام صادق از قول پیغمبر نقل میکنه قال رسول الله امام صادق میفرمان پیغمبر فرمودند افزل و ناس پس انسونها افضل بالاتر پایینتر درجات مختلف دارن دیگه افزل و ناس من بالاترین انسونها کیه من اون کسی که عشق العباده بعضی هم میگن کلمه عشق تو زبان معصومی نیمدی این تو کافیه افزلون ناس من عشق العباده بالاترین انسان ها اون است که به عبادت عشق ببرزه ببینید جوان به خدا دوست دارم میگم به خاطر مکتب امام صادق میگم به خاطر مکتب امام زمان میگم عزیز من اگه عشق به عبادت به فهم عشق دیگه برات معنا پیدا نمیکنه بیا با خدا حال کن این کلمات نگی چرنجیارت من گیرم گایی و ی بیا با خدا حال کن بیا با امام زمان حال کن به خدا قسم دعا کنیم و بخواهیم به خدا قسم اینی که من میگم حالا فکر نکنید من موفقمم دعا کنید من موفق بشم ولی اگر فرض کنید تو ماه یه شب من بتونم این توفیق پیدا کنم یه ساعتی خلوت دل شب یه گوشه‌ای کسی متوجه نشه اون حال عشق عبادت به خدا درس بده به خدا با هیچ چیزی قابل معاوضه نیست اونایی که چشیدن چه میکنن از صبح انتظار میکشه لحظه موعود نصف شبه برسه حالا این مقدار تعبیر اد نداره عاشق معمولی معشوق معمولی ا شرف به یک بار کنید مورد ایکس بهش میگن این معشوقه تو ساعت چهار بعد از ظهر از این کوچه رد میشه ممکن است ساعت سه بیاد تو کوچه بشینه نمیشه از ساعت دو بیاد تو کوچه بشینه که فقط معشوق از اینجا رد میشه نگاهش بکنه اخ خدای به این ندامت ای خدا تو رو به جان زهرا تو رو به قلب زهرا تو رو به جان علی جوون ما رو عاشق مکتب خودت بگرد ی <تصفيق> و منه که در به عنوان یه بنده برای بندگان مؤمن خدا بخوام خودشون هم باید بخوان خدا برای همه میخواست ولی خودشون بخوان خدا انایت کنه. کن حالا یک عاشق معمولی یک ساعت دو ساعت تو کوچه میشینه معشوقه معمولیش رد بشه نگاه کنه عاشق خدا انتظار میکشه وقتی که خدا میگه در رحمتمو اون سلف آخر شب باز میکنم دوش وقت سحر از قص نجاتم دادن و درون ظلمت شب آب حیاتم داد چه مبارک سهری بود و چه فرخنده شبی اون شب قدر که اون تازه براتم دادن یه منعشق العباده عبادت و عشق ببرزه آخ نماز کندی خوشا به حالت خدا بیا مرزه مروم های مهندس رو یه تیکای خاص خودش داشت حقا به گردنی مصعیلیه داره یادش کنید مروم مهندس مصعیف میگو شده کسی گرست نست قضا نخورده؟ مثلا نهار دارم میدن شما رفتید نهار خوردید برگشتید آقا داره میاد میره تو سالن نهار بخوره نهار تو میل کردید بله چی بود چلو کباب حالا غذام نخورده خیلی هم چلو کباب دوست داره بگه خوشا به که شما غذاتو خوردی منم مجبورم دارم میرم غذا میخورم اصلا فهمش هم میگیره بعد چطور میگیم خوشا به حالت نمازتو خوندید من که نخوندم باید برم بخونم برای من به اندازه چلو کباب مزه نداره بدبخ منم اون چلو کباب طبیعیش مزه داره افراد سالما میگن مزه داره تبدار میگه مزه نداره نمیخوام بخورم نماز مزه روح داره بیمار روح میگه وای تو نماز خوندی کشاب حاله پس باید این بیماری رو مداوا کرد این میشه خلوص عبادت افضل الناس ناسمنه شغل عباده. ادامش ادامهش فآنقه ها با آنقت ها. ها با این عبادت معانقه کند معانقه مثل که معشوق رو در بغل بگیره ببوسه نمازی اینجوری مثل عبادت اینجوری باید مثل اشقوازی با یه معشوق با نماز ارتباط داشته باشه و احبها ها دوستش رو داره به قلبه و دلش دوست بداره داره و باشره ها به جسده باشره رو دو سال قبل تو شرح دعایدی همزه توضیح دادم کی یادشه؟ اللهم این میسألو که ایمانم تو باش رو بهی یادتونی چی گفتم؟ احسن گفتم مرعوم آیت الله شخمتقی آمولی رحمت الله علیه یه خاطره از ایشون بگم بعد اینو بگم اگه محافظی صلابات بفرستی رحمت الله علیه مرد خدا بود مرد خدا بود چه شایرده هم تربیت کرد ایشون برای شایرده خصوصیشون تعریف کرده بودن گفت شبیه خواب دیدم یه دشمنی من حمله کرد درگیر شدم با دشمن تو عالم خواب سخت او منه میزنه من او رو میزنم دیدم حریفش نیست داره منه میندازه مجبور شدم دستشو گاز بگیرم منو رها راها کن دست رو گاز گرفتم از خواب پریدم دیدم دست خودم رو گاز گرفتم گفتم خدای ممنون یاد دادی خودمم که دشمن خودم هم اعدا ادوب بکر نفس و کلتی بین جنبه داشت. من خودم و سری داشتمن و توی هوای نفت گفتم خودممو باید گاز بگیرم یعنی خودیت یعنی منیت اینا این معرو آتون لایه تحقیقعامالی رحمت الله علی در سه اخلاقی داشتن برای یه عدهای شب های چهارشنبه چه سال قبل من درک نکردم و فکر نکنی ص منقدر زیاده بزرگانی که درک کردن برای ما گفتن اونا نوشتن من از نوشتش ار میکنن چاپ شده حقیقت جاویدان. این مطلبی که میخوام بگم تو اون کتابه. کتاب اخلاقی زیبایی است در سطح بالا در اون کتابیشون این فرمان شما یه وقت سیب دارید گلابی دارید به دارید آلبالو دارید یه ظرفم شکر دارید اینا رو کنار هم گذاشتید مباشرت ندارن مجاورت دارن مجاورت غیر از مباشرت یه وقت مربای به می‌خواد درست کنی بهریز می‌کنی آلبالو رو توی ظرف با این شکر به رو با این شکر میجو یعنی تمام شیرینی به ذره ذره وجود این به یا این آلبالو نفوذ کرده هر کیکه از این به یا سیب یا این آلوالو رو میخوایید بخورید شکر رو توش حس میکنید این میشه مباشرت اللهم اینی اصالو که ایمانم رو بهی قلب قلب من با ایمان اینجوری مربای ایمان قلبی داشته باشم این معنی حالا اینجا افضل و من منعشقل عباده و آنقتها و عبدها ها به قلبه و باشرها به جسده و تفرقلها اگر با جسمش اصلا جسم عجین شده با عبادت جسم مباشر عبادته چطور جسم مباشر عبادته یعنی شما الان هیچ کاری دیگه ندارید خب این لفظ ذکر بگه این مباشره هیچ کاری دیگه ندارید ذهن فکر حق باشه کار دیگه نمیتونید انجام بدید در اون م... نه الان رفتید مشغول معامله دادستتدید انگیزه ی نیت برای خدا باشه دادستتد میشه مباشرت جسدی با عبادت بر اساس مباشرت قلبی با عبادت اگر این شد و تفرغ لها سراغت درست میکنه برای عبادت ببینید و تفرغ لها فراغت برای عبادت ایجاد میکنه ماها دیدیم بزرگانی رو که ماه رمضان که میشد حتی کارهای اقتصادیشون کارهای علمیشون همه رو تحتید میکردم برای ایک عبادت بیشتری انجام بده اگه لازمه شب زودتر بخوابم که بتونم عبادت کنم کارم جوری تنظیم کنم شب زودتر بخوابم اگه لازمه از بعضی چیزا بزنم که به بل آقا همه چیزو فیلم تا آخر شب باید ببینم. تلفونم رو یک ساعت یک ساعت و نیم قیبت بعضی ها رو پشت تلفن تا نکنیم که حال نمیایم. باید اینا رو مثلا آخر شب بشینیم تلفنی هامون رو داشته باشیم. و و و و بعدشم می خواهد. من حال ندارم نماز شب بخونم. اونا رو بزن. تو که حال نداری از یه فیلم بگذری، میخوای توفیق عبودیت نماز شب و راز نمیشه نیاز نمیشی بعد از خیلی چیزا گذشته تا به یه چیزای دیگه لذا همه بحث منم هم در این مدت اینه ببینید چه کنیم که بریم بالا تا از اون بالا برخردار از مواحب ارزنده بشیم و تفرقلها فهل لا یبالی علا ما اصبحه من دنیا علا عسر ام این دیگه خیلی عجیبه وقتی به این درجه رسید دیگه براش مطرح نیست چند روزه زندگی در خوشی میگذره یا در رنج چون خوشی و رنج فقط تو اون دیده این دیگه توضیح خیلی میخواد نگم جانم به پدایت زهراجم چی به ما یاد دادی؟ چی به ما آموختی؟ و همه شمون زندگی خود شوهر بچه ها نه نه شاگردات اونایی که کنار یه گوشه صفرت یه مختصری نشستن چه گرفتن؟ و چه آموختن سزهش فرصت نیست شرحالش رو چندین سال فقط با مردم با قرآن سخن گفت هرچی گفتن جوابش به مناسبت آیه قرآن آورد از کجا گرفت یه مدتی با زهران نشسته مباشره با قرآنه جوشش وجودیش هم کلمات قرآنی لذا چی به ما یاد ددی یک عبادت به چه معنا اون غر عبادت کرده حتی تورند قدم ها پاهاش ورم کرده اینقدر یه شب جمعه است آقای ما مجتبا میگه گوش میدادم مادرم مشغول نماز مستحبی بود نماز میخون میخون میخون میخون دعا دعا دعا هر چی گوش کردم دیگران رو گفتم مادر جان ما چی امام که میدونه امام حسن هم امام تو همون سن نشم. اون یه بحث دیگریست جایی خودش محفوظ خواهد ما بفهمیم مادر جان همش دیگران فرمود فرزندم اجار اجار سمد دا دیگران دیگران بذار دیگران رو مقدم بداریم عبادت برای خودخواهی نیست، عبادت برای رشد همه سوی الله لذا یکی از عالی اگر به جز خدمت خلق نیست بیارید توی این وادی حالا روایتم داریم اتفاقا در راجعه باز از احرام داریم اگه شد بردو میخونم که کسی که در صدد دستگیری دیگران در سیر الاله بکشونه کسی که فقط می‌خواد خودشونه جات بده این دوتا چقدر فرق داره اتفاقا از خود از زهرا سلام تو بهار جلد دوم صفحه 13 به بعد در این زمینه چند تا روایت هست حالا اگه رسیدم ان شاءالله کنم خودش گل بود میخواست بقیه گل بشن خودش عطر بود بقیه بغیه لغت ندارم خودش بهشت بود میخواست بغیه رو بهشتی کنه خب حالا چه گریه میکنیم مگه با گل چجوری برخورد میکنم حالا اشاره میکنم من تو این زمین ها توفیق ندارم دوستان انشاءالله با اون هم صداشون هم حالشون هم اشعاری که هفتن شما رو به فیض برسونن منم صحیم باشم شعری دیدم از یه شاعر در این زمین است خوشم اومد اگه یادم بیاد مگه باقوان چون پرورد گلهای ناز دست او شایسته بوسیدن است هر نگاهی این سخن گوید که گل بهره بوییدن نه بهره چیدن است. گرچون این باشد چرا در باغ وحی سرنوشت گل به خون غلطیدن است؟ آتش و میخدر و ضرب لغت آه گلچین این گل چیدن است. بلگل و شم و گل و پروانه را اینک هنگام جدا گردیدن است اون مولا دیده ما خود اون مولا دیده ما خود بشنیده ایم. خود شنیدن کی سانه دیدن است این گل این عطر این وجود لغت ندارم چی بگم این نزدیکترین ترین به پروردگار این مظهر تام کمالات صفات الهی برای کمال ما میخواست ما رو رشد بده اما در این رشد دادن با او چگونه برخورد کنم. که این مصیبت من اگر واقعه تاریخی رو نقل کنم میخوام این برداشت در این رابطه بکنم چرا امیرالمومنین همه نوشتن همه وقتی بدن زهرار داد کفن کرد نماز میت خون که نازر و حرکت دادن کنار قبر آوردن حالا دیگه باید میت رو دفت کنن اولا مستحبه که هرچی زودتر میت دفت بشه اینجا دستورات دینیه خب از زهراب و وسیعت خودش منو رو نگه دارید یه مقداری تا شب نگه داشتن حالا هم طبق سهغاب بخواد عمل بشه باید فعلا که دادن کفن کردن آوردن کنار قبر زودتر دفت کنن هم امیر محظور محضور نصف شب داره دشمنان فهمن با زود کنه اما همه نوشتن اینجا علیج ناظره گذاشت داره که دیگه نماز خون چرا؟ این نماز این نماز میت که ما غیرت اون نماز نداشتیم. همه نوشتن امیر دید قدرت دفن زهرا نداره مگه خدا نمیگه استعینو به صبر و صلاح کمک بگیرید از نماز روزه نماز روزه جوونا خیلی بهتون قدرت میدا اگه میخوای از گناه دور بشی برادر جوان خواهر جوان نماز مستحبی زیاد بخون روزه مستحبی زیاد بگیر حدی میشه در مقابل گناهان البته با یه شرایط دیگه ایام که این یکی شرط کردم استعین و به صبر و صلات علی دید نمیتونه بدن زهرا رو دفع کنه لذا استاد درکت نماز خون مثل اینکه داره میگه خدایا من چگونه میتونم بدن زهرا رو خب حالا باید بدن تو قبر بذاره معمولا یک محرم میره تو قبر یکی هم بالای قبر بدن رو میده علی به کی بگه بدن زهرا رو بگیر حسن و حسین که هم ظاهرا سنن خورد سالن هم علالقائده مشکلاتی داره خود امیرالمومنین که تنهاست عباس گرچه عموی پیغمبر پیر مرد محرمه اما میخواد پیغمبر چیز دیگه نشون بده یه وقتی دیدن از داخل قبر دو دست اومد بیرون صدا صدای پیغمبر تو نسبه شد میخواد به علی در این حال تسلی و دلداری هم بده علی جان امانت هم و بده خودم قبول امیرالمؤمنین بدن زهرا سرازی رو سرازیر کرد اما خب شنیده اید همه میگن آیا امانتی ای رو که پیغمبر شب عروسی به علی داد گفت زهرا امانت توست آیا این امانت پلو شکسته بود آیا این امانت صورتش سیلی خورده بود آیا این امانت بازوانش عباس میگه ما اومدیم دیدیم علی به تعبیر من به تعبیر من دیدم علی داره میل لرزه مثل این که جان خودشو داره تو خاک می شفره. شروع کردیم خاک رو قبر زهرا ریختن همینجوری که خاک تو بدن زهرا می ریختیم. رنگ علی زرد می شد و محضی که خاک ریختن تموم شد مستحب روی قبر رو با زمین یکسان بکنن این دستی که رو قبرا میکشیدیم علی هم میکشید یه وقتی دیدم علی دو تا دستشو داره به همدیگه میزنه و تکون میده یعنی هرچی داشتم از دستم رفت اینجا بود که دیدم علی رو قبر نشفت صورتش کرد به طرف قبر پیغمبر غلا یا رسول الله ام سفیتک صبری چرا خاموش شده غل یا رسول الله انصفیت که صبری، یا رسول خدا در فراغ دخترتو صبر من علی کاهش یاف کلام معصوم نمیگه تمام شد صبر علی تمام نمیشه کاهش یاف ستون عبدو که ابنتو که به تظافر امت که علا حضبها یا رسول الله بزودی زودی دخترت به تو خبر خواهد داد که چگونه این امت دست به دست هم دادن تا فاطمه را لحول ورده کنم. اما یه عبارتی بعدش داری اینه نهج و دارم میخونم یه عبارتی بعدش داره عجیبه فرمود فه و از یا رسول الله اصرار کن در سؤال از زهرا. خب اول فرمود ست و, و کرد به زودی به تو خبر میده اما بعدش فرمود فه سوال، اصرار کن چرا چون این زهرا اینا رو مخفی میکنه نمیگه همون جوری که از من مخفی کرد یا رسول الله تو اصرار کن تا زهرا به تو بگه از تو مخفی نکنه اون چرا که زهرا مخفی کرده بود اما در دل شب موقعی قسل دادن برای من علی معلوش اللهم صل على فاطمة بابيها وبعنها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما به الم الله از هم البال و بر هم خفاف و نیکشافال رتاف و نقتار رجاف و ذوقت و منعت و انت غیلی که و علای کللو مشت ها و انط مستح وعل کللو اللهم صل على محمد وآل محمد قول الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وأرفتنا بذلك منزلتهم وفرج سهر جان نام به حق هم فرجان عاجلان غریبان کلام لباس او یا محمد یالی يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني انك مقابل وانشراني هنگام ناصران، یا يا یا صاحب الزم، اصبر لکفن ابو کل هم و غم من جلی کر ya ali ya ya ya ya ya ya ya ya ali ya ali ya ya ya ya ya ya ali ya ali ya ya ali ya ya جلال ملک رام یا حمل رحمین یار حمل رحمین یار حمل رحمین نجنا و بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أجل لوليك الفراد اللهم أجل لوليك الفراد اللهم أجل لوليك الفراد وجعلنا من أنصاري وأباني اللهم نصر من نسر الدين ظالم من خذل المؤمنين اللهم اصل كل فاسد من امور المسلمين اللهم لا تسلت علينا و من لم يرحمنا إلهي لا تكلني الى نفسي ترفت عين نعبد اللهم ارزقنا تنفيقا و وبعد المعصيه و صدقنیه و عرفان الهرمه و اکرم نابل حدا و و قلوبنا بالعلم و المعرفه و تحر الحرام و شبه و عن ابسارنا ان الفجور و خدا باسم اسم بجلال به جلال حوائج شرعیه این جمع روا بفرما، مریضا و منظور این یا آجل انایت بفرما، اموات زبی حقوق و اموات این جمع بقش و بیامور، کشمان ما به جمال مولای من روشن و منور بگردان نبی